یکی از شاهکارهای راه آهن ایران پل ورسک است. پل ورسک این پل کجاست؟ این پل در شکاف بین دو کوه از رشته های البرز ساخته شده است و در جنوب شهرستان قائم شهر قرار دارد. آیا این پل از تهران خیلی دور است؟ نه خیلی، حدود 250 کیلومتر این پل در چه زمانی ساخته شده است؟ این پل در سال 1936 میلادی توسط مهندسان خارجی و ایرانی ساخته شده است. چرا این پل ورسک میگویند؟ ورسک نام روستایی است که در کنار پل قرار دارد. چرا به نظر شما این پل یک شاهکار است؟ چون از مصالح معمولی مثل سیمان و شن و آجور ساخته شده است و صد و ده متر بالاتر از کف در قرار دارد. آیا هنوز هم قطاری از روی این پل عبور می کند؟ البته اگر دوست داری می توانیم یک روز با هم از این پل زیبا بازدید کنیم.